خواهی‌های بزرگ با آوازه و عشق سیراب می‌شوند اما دردمندیها و استراب‌های بزرگ در انبوه نام و ننگ در گرمای مهر و عشق همچنان بی‌نصیب می‌مانند اندیشه‌ای که جهان را به رنگ و طرح دیگر می‌فهمد خود را چشمه نهر‌های غیبی و صحرای وزش‌های قریب می‌یابد تنها و تنها در جستجوی آشناست. خویشاوندی روح نیاز روحهایی است که در این نشعت بیگانه ماندهاند. بیگانگی عالم بیکران وجود را تنگ نایی خف و آنکه در سلول تنگ و تاریکی به زندان مجرد محکوم است تا میشنود که آشنایی را آوردهاند، سقف سلولش تا ورای آسمان فرا میرود و دیوارهایش از همه سو تا آن سوی افقهای زمین دور میشود و زندانش را اقلیم آشنایی می‌یابد از چهار جهت محدود به او روحی که پیام دارد نه مرید تلبد نه عاشق در راه گذر عمر چشم انتظاری ساده است و وجودش ندایی است که آشنایی را میخواند و حیاتش نگاهی که در انبوه این صورتک های مکرر و بی مسئولیت و بی انتظار و بیاسترابی که بیهوده می گذند چهره معنوس و محرم خویشاوندی را بیابد که بر آن موجی از حیرت افتاده است و دو نگاهش همچون دو کودک گم کرده مادر در این دنیای بیپناه آوارند آری، نه مرید، نه آشق، آشنا آنکه پنهان از فهمهای پلید و سیاه جاهلیت شرک در خلوت نخلستانهای سبز محرمش روح درد مند یک شیر میتواند آرام گیرد در حلقوم یک قریب میتواند زجه کند بیشک از میان همه شیعیان بسیار علی آنکه او را در خلوت تنهایی شبهای نقلستان خاموش در روم مدینه بیرون از شهر و قیل و قالهای بیهوده شهر و بیهودگان شهر میشناسد و ناله های در وی را در حلقوم چاه میشنود شیعه خاص و صاحب سر علی است اوست که علی در میان مدینه پر از مشرک و منافق و در میان چهره های اعراب بدوی بیروح و بیدرد و بیدرک که اسلامشان نیز همچون کفرشان به چیزی نمیارزد خود را با او معنوس و آشنا یابد و رنج آن همه بیگانگی را در انبوه آن همه آشنایان ناآشنا و نزدیکان دور و مسلمانان مشرک و دوستان بیگانه در سیمای علی شناس و علی فهم و در عمق چشمان خوشنگاه علی بین او از روح پرکشمکش و مجروح خیش میزداید اوست که در برابر چشمان ابله و نگاههای احمق هزاران عرب نیمه وحشی و تمام وحشی در سیمای یک ایرانی مزدکی سلمان فارسی صف صدها صحابی مکی و مدنی پیغمبر را می شکافت و پا به درون خانه محمد میگذارد و محمد این پیغمبر عربی این شاهزاده مزدکی ایرانی را که در شهر جی اسفحان و یا کازرون پرورش یافته و از نژادی دیگر است و زبانی دیگر و خانواده با گذشته و تربیت و تاریخ و دین و جامعه و میهن و آب و هوای دیگر و هزاران فرسنگ از مدینه و مکه دور سلمان و منّا اهل البیت سلمان از خانواده ماست خطاب میکند و این جمله را در پاسخ سوال و تردید مهاجران به انصار میگویند که میپرسیدند سلمان چه کاره است مهاجر است یا انصار اگر از انصار است باید مدینه‌ای باشد و نیست. اگر مهاجر است، باید مکی باشد و نیست. این یک عجم است، بیگانه است، با زبان ما سخن نمی‌گوید، از نژاد ما و سرزمین ما که زبان و نژاد و سرزمین پیغمبر است، به دور است. اما اینان چه می‌فهمند که او بزرگترین مهاجر است؟ مهاجران از مکه به مدینه آمده بودند. و او در پی پیغمبر از شهر و دیار و وطن خیش آمده بود. دیگران برای دست یافتن به رسول از خانهشان قدم به بیرون می نهادند و او از میهنش، از خیشتنش. دیگران آورنده پیام را در میان خیش یافتند می و او برای اتصال به زبان وحی باید صحراها و ها و دشتها و راها و بیراه های بسیار و سنگلاخ های دروشناک و پرحراس را می و شهرهای آباد و آسوده و پرنعمت و آرام و شاد ایران بزرگ و متمدن را رها میکرد و به صحرای ریگزار و مخوف عربستان و کویرهای توفان خیز و سوخته و بی آب و علفی که در هر گامی بیم جانی می رو آورد و چهره نازک و اندام ناز و پوست نرمی که لطافت پرهای زیرین قاقم نوپروازی را دارد که هنوز از آشیانش بیرون نیامده و در زیر بالهای مهربان مادرش خشونت نسیم و سردی هوا و انگشتهای درشت اشعه بر آن نخورده است. آری این شاهزاده ناز تنعم تنعام برخلاف پیشبینی حافظ راه به جایی برد و در قلب ریگستان داغ و اقیانوسهای پهناور و مخوف رملهای توفانخیز و مرگبار عربستان خود را به چشمه وحی رساند و سختی زیستن در بادیه و بودن با بدویان خشن و قبایل و تواف خطرناک عرب را بر خود هموار کرد و پیغمبر را شناخت و به او ایمان آورد و شگفت این که او این که از دورترین سرزمین ها آمده بود او که با دنیای محمد گذشته محمد فرهنگ و زبان و ادب و نژاد و خاندان و ملت و جامعه و طائفه محمد هیچ آشنا نبود از میان همه مهاجران و انصار نزدیکترین یاران و معاشران و خیشان پیغمبر قریش و بنی هاشم و همه آنها که پیغمبر از آنان بود و همواره با آنان و در میان آنان این بیگانه عجمی ایرانی مسافری که از راهی بس دور دست آمده است بیش از همه درست تر از همه نزدیک تر از همه مهر نبوت را که در میان دو کتف محمد پنهان بود تشخیص داد و در رسالت او چیزی را دید که دیگران همه از دیدن آن محروم بودند و به پاس این نهان بینی شگفت و اعجازآمیز او بود که از میان همه مهاجر و انصار که سالها در پی او شمشیر میزدند و جهاد میکردند و نام و رسالت محمد را در جهان پراکندند تنها و تنها این بیگانه دور و نو آشنا خطاب سلمان و مننا گرفت و پس از مرگ پیغمبر نیز در صورتی که عمر از مسلمانان ترتیب داد، در ستون مهاجران و انصار نام سلمان نبود. نام سلمان در ستون خانواده پیغمبر نوشته شد. زیرا مسلمانان آن روز به هر حال با زبان پیغمبر بیشتر از امروز آشنا بودند. امروز ما این جمله پیغمبر را که فرموند سلمان از ماست. یا سلمان از خانواده ماست خیال میکنیم جنبه اخلاقی و ادبی دارد خیال میکنیم از نظر زیبایی تعبیر و لطف بیان و نشان دادن میزان صمیمیت و خصوصیت خود با سلمان گفته است در صورتی که اصحاب پیغمبر و حتی عمر و عبو بکش نیز که زبان پیغمبر را بهتر از ما مسلمانان میدانستند چنان که میبینیم معتقد بودند که پیغمبر وقتی میگوید سلمان از افراد خانواده من است، از من است. یعنی سلمان از افراد خانواده من است. یعنی سلمان از من است. آنها میدانستند که پیغمبر شاعر نیست، نویسنده نیست، به لطافت تعبیر و زیبایی تشبیه و جزالت بیان و این گونه سنایه بدیعیه توجهی ندارد. از این رو چنان که دیدیم عمر بر اساس همین جمله نام سلمان را جزء اهل بیت پیغمبر در دفترهای رسمی دولتی ثبت کرد و مانند چند تن افراد خانواده او اهل البیت برایش از بیت المال مسلمین حقوق باز کرد و از آن روز که مسلمانان این حدیث را از پیغمبر شنیدند دیگر هیچ کس نگفت سلمان فارسی همه به او میگفتند سلمان محمدی که یک تن شک نکرد که او عجم نیست همه یقین کردند که او خویشاوند پیغمبر است و نیز میدانستند که چگونه خویشاوندی است و چگونه خویشاوند پیام آور شده است. شگفتین که با این همه کسی احساس نکرد که چرا چونین شد؟ و سلمان در پیغمبر چه میدید؟ سلمان، این شاهزاده ناز پرورده ایرانی، این زاده پاک اهورایی، زندگی افسانه‌ای زیبایی دارد. همچون بودا، شهر و خاندان و نعمت و راحت را رها میکند و بیقرار و سراسیمه در راهها و شهرها و مذهبها و ملتهای گونگونی آواره می شود. همه جا سر میزند همه جا می گردد، همه جا می جوید، تاریخ حکایت می که او سالها در جستجو بوده است، انتظار می‌کشیده است و در پی مذهبی که روحش را سیراب کند و در جستجوی پیغمبری که دل بزرگ و پرتبقهش را آسود سازد، بسیار جاها را گشته و بسیار کسان را دیده است، دین اجدادی و خانوادگیش مزدکی او را بسنده نبوده است. مذهب زرتوشت گرفته است و ندای راستی و پاکی و روشنایی را از درون آتش کده ها شنیده و خود را بدان سو کشانده است و پس از چندی دریافته است که این آتش و این آتشگاه آتش و آتشگاهی که او گم کرده است نیست. آتش این آتشگده ها از هیزم و پی و نفت است و آتش او آتش دیگری است. او از این آتش گرم نمی شود. آن را رها می کند و سر به کوه و بیابان می و در راهی ناگهان صدای دلنوازی می شنود. در پیان می دود و می بیند که آوای سرود نیایشی است که از پنجره کلیسایی در تزا تنین می‌آفکند. آوای آسمانی که از عشق و محبت و پارسایی حکایت میکند. بدان دل میبندد و در برابر کشیش مذهب عیسی زانوی تسلیم به زمین مینهد و اوراد کتب مقدس را در زیر قرفه های کلیسا زمزمه میکند. و روحش را از آن آرامش و صفا و خلوص و محبت سرشار می سازد و چندی بر آن می‌گذرد اما روح بیقرار و تشنه او جایی آرام ندارد در همان حال که آهنگ کشدار سرودهای مقدس کلیسا از روزنه گوشش به درون جانش میریزد و او را نوازش می‌دهد این احساس از عمق نهادش از درون پردههای نهفته قلبش با صدای آهسته ولی تلخ و پیگیر و دردآلودی او را به خود میخواند که نه این صدای آن آشنای گم شده من نیست این آنچه مرا سالها به دنبال خود میدوانده نیست این آنچه میخواستم نیست این صدا صدای او نیست من او را ندیدم چهره او را ندیدم صدای او را نشنیدم اما میدانم که در نخستین دیدار او را خواهم شناخت در انبوه خلایق او را خواهم یافت صدای او را تشخیص خواهم داد این صدای او نیست این او نیست این را میدانم. اما نیاز آنگاه که تمام هستی آدمی را تسخیر میکند آگاهی خیش را تا آنجا که بتواند پنهان میکند احساس تا آنجا که دیگر نتواند سراب را باور کند کشمکش چندی پنهانی در درون سلمان برپا بود و در پایان تاریخ با چشمانی که از تعجب باز مانده بود دید سلمان اینکه چندی پیش به کلیسا پناه آورده بود و چنان گرم و گیرا سرود میخواند اکنون اکنون ناگهانی از پنجره کلیسا خود را به شتاب بیرون انداخت و سر به بیابانها نهاد و باز در سینه باز سهراهای بیفریاد گم شد و گم شد و دیگر از او نشانی نبود رد پایی نبود خبری نشد کسی از او سراغی نداشت سالها گذشت و گذشت و تاریخ این خبرنگار کنچ و پرتلاش و خستگی ناشناسی که همه جهان را همیشه پرسه میزند و هر جا خبری هست حاضر است و در هر گوشی از زمین هادیه ای رو میدهد خود را هر جا که باشد به شتاب میرساند اکنون به مدینه آمده است اینجا خبرهاست مردی پس از پانزده سال تنهایی و انزوای در قاره را و تفکر در خلوت خاموش شبهای ستاره باران آسمان کبیر بر دامنهٔ كوه آمده است و پیام آورده است و با جانی که از آتشی مرموز شعله گرفته است و با اندیشهای که از پیامهای اسرارآمیز آسمانی باربر است با خیالی که در تنهایی ساکت پانزده سال تفکر و تأمل‌های بلند و عمیق با لطافت شعر و جذبه سهر یافته است با دلی که در زیر باران وحی باغهای خرم و سرسبزی در آن شکفته است و با روحی که نوازش مرموز و مهربان دست الهام رنگ ها و لکه ها و قبار های پلید زندگی خاکی و آلودگی های قلیز و افنش را شستشو داده است و وزش نسیم های ناپیدای رحمت خداوندی او را در ره گذر خیش خوش کرده و عشقی به لطافت روح فرشتگان به جذبه نیرومند خورشید به عطر راز گستر یاس های ناپیدایی که در فضای کوچه باغهای خیال شاعری صدا زده، در بستر موهوم و معشوقش منتشر است، به شوریدگی و حراس و بیم و امید صبح قیامت، به سوزندگی آتشهای مزاب و شکنج آور اقیانوسهای سوزان همه طبقات جهنم، به پهناوری و سرسبزی و جاودانگی بهشت، به صفا و بلندی و بیکرانگی آسمانها، به استحکام و استواری ایمان یک عبوزر، به خلوص شبنم اشکی بر گوشه چشم معزنی در عصر اندوه بار یک چهارشنبه، به تشنگی سوزان کبیرهای داغ و تافته شبه جزیره، و به افوت پارسا و نیالوده ی لبخند زیبای یک صبح معصوم، به بیقراری شعله شمعی در رهگذر بادهای باتهای که از حراس موهومی میگریزند، به نجابت لبهای چاک خورده و تاول زده رهگذر ره که در برابر چشمه زلال و سردی که از دل سنگی در سینه تافته کبیر میجوشد نشسته است، و رقص سحرآمیز و زیبای امواج و کرشمه رفتارش را بر پرده خیالش نقاشی میکند و زمزمه جادویی آن را که به سرود فرشتگان در معبد آرزوهای بلندش میماند در دلانگیزترین ترانه‌ها میسرایت و به دو باز میفرستد در این سو چه سخن هاست در اینجا چه سفرهاست در این راه اما اما چگونه میتوان رفت برگردم و تاریخ به این مرد مینگرد به اینکه پس از پانزده سال عضلت در قار تنهای بزرگ و دردناک خیش اکنون آمده است و چهرش تافته از سوز درون ملتهب و مرموزش دست و پایش مرتعش از ای که به روح بی انتهایش افتاده و فریاد میکشد. ای مردم بطهای خیش را بشکنید از این لجنزار زندگی افن و روزمرگی پلید و بی درد و پست به در آیید. پرواز کنید، این دل آسمان، این بام بلند آرزوهای بزرگ، این خدای پرشکوه که جامعه آسمان را دربردارد دارد و عشقهای ستارگان را برگونه، و با چشم خیش خورشید، شما را هر روز می تا از شما یکی از مرداب برای و به سوی او پر ای مردم در میان شما کیست که پیام مرا بشنود ای مردم سینه من گنجینه پنهانی پیامی است که در تنهایی ساکت پانزده سال ریاضت عبادت و تفکر در قار در دل کوهستان در قلب شبهای درازی که همه در بسترهای آرام خود خفته بودید و من بیدار بودم در زیر باران محتابهای هر شب در گفتگوی پنهانی خیش با ستارگان خاموش بر روی هم انباشدم بر روی هم نهادم و اکنون فشار طاقت فرسای این آیات سنگین و دردناک و سنگینی آور این پیغام های بسیاری که برای گفتن بیتابی میکنند و چنان به خشم بر دیوار سینه میکوبند که استخوان که استخانهای ناتوانش به فقان می آیند. ای مردم کیست که اندکی از بار سنگین و سوزانی را که جانم را به سطوح آورده است برگیرد با سرنگشت احساس خیش کمی از آن را بردارد و بردوش دوش جان سبکبار خود بنهد مرا اندکی سبکبارتر کند من اکنون در زیر فشار این همه حرف و پیغام ها و درد و نیازمندی ها و گفتن ها و فهمیدن ها و احساس کردن ها مرد ناتوان و بیماری را میمانم که کوهی بر سرش ریزش کرده باشد و خربارها تخت سنگ و سنگ ریزه بر سینش افتاده باشد. و او که در زیر این آوار احساس میکند مرگ دردناکی که شتابان به سویش میدود در یک قدمی اوست و او که تنها سرش از زیر این توده سنگین بیرون است شما را به خیش میخواند ای مردم از میان شما کیست که مرا از زیر این آوار بیرون کشد کیست که این سخرهای عظیم و تخت سنگهای بیرحم و سنگین را با بازوان مهربان قلبش با دستهای نیرومند فهمش بر دوش روح خیش کشد نمیگویم همه را اندکی را در میان شما کسی نیست که به یاری من بشتتاببد و تاریخ ایستاده است و مینهگرد مرد را و مردم را و می بیند که صدها و هزارها عرب بدوی از مدینه و مکه از قریش و بنی هاشم و حتی از خانواده عبدالمطلب خانواده شخص پیغمبر همه بر او ازدهام کرده اند و او را همچون کسی که گویی نمایش میدهد در میان گرفته و با چشمان احمق و دهانهای زشت و سیاهی که از تعجب باز مانده اند و هر یک به خمیازه قاری و یا حفره قبری میمانند مرد را مینگرند فریادهایش را میشنوند التهابهایش را میبینند میبینند بی است چهرش از آتش برافروخته است از سوز درد با چشمهایش فریاد میکشد با نگاههایش دعوت میکند به خود میپیچد همچون مار گزیده به خود میپیچد آهنگ صدایش از درد و فریاد گرفته است صدایش به ناله شباهت یافته کوفته است مجروح است میافتد و برمیخیزد و فریاد میزند و مردم را میخواند و این مردم مهاجر و انصار قریش و بنی هاشم، همه گردا گردش را گرفته و با لبخندی آرام و چشمانی بی درد و قیافه شکفته از خوشحالی سری تکان می دهند و با خود می‌گویند: آفرین آفرین آلیست عالی به, به به به به به خیلی هنرمنده است چه خوب بازی می کند خیلی خوب چه خوب حرف میزند؟ خیلی خوب واقعا آدم خوشش می‌آید. این مرد باعث افتخار ماست حوشمند، هنرمند، خوب ببین چه کار میکند تا حالا در عرب کسی مثل او نیامده است مدینه چون مردی را به خود ندیده است واقعا موجب سربلندی قریش است و مرد همچنان فریاد میکشد مردم را میخواند. آیا کسی نیست که این بار، این آوار و مردم همچنان ایستادند و مینگرند و لذت میبرند و افتخار میکنند به به به و تاریخ آن گوشه ایستاده است و از دور می نگرد زیر لب لبخندی تلخ و دردناک دارد گویی با لبانش میگرید میگرید به سرنوشت این مرد این در وطن خویش غریب و می خندد به این قوم این پیروان مؤمن محمد این مهاجران و انصار و از خود می‌پرسد آیا از میان اینان کسی پیش نخواهد آمد؟ صفحه این مؤمنان آسوده و بی را که گردا گرد مردی استادند و پیشوای خود را مینگرند و افتخار می‌کنند کسی نخواهد شکافت و پیش نخواهد آمد تا ببیند که این پیغمبری که در انبوه مؤمنان صادقش چون این بی کس و بیگانه و مچهول مانده است چه می گوید؟ چه میکشد؟ چه میخواهد آن بار سنگین آن آوار خفقان آوری که از آن این همه مینالت چیست او را کمک کند او را سبکبارتر کند اما هیچ کس قدم پیش ننهاد پیغمبر در میان تنها فریاد می‌کشید و به خود می‌پیچید صدایش گرفته بود و چهره‌اش خسته و شکسته شده بود و قومش مهاجران و انصارش، قریش و بنی هاشم و حتی بنی عبد همچنان ایستاده بودند و او را می میستودند می ستودند. مباهات می کردند. به، به، به، به، به، به، به، به، عالی است، عرب چون این مردی به خود ندیده است و مرد همچنان ای مردم از میان شما پیام مرا، رنج مرا، و تاریخ همچنان از دور مینگریست و با لبخند پنهانی و تلخش می‌گریست و زیر لب به درد می‌گفت. پیغمبر پیغمبری علالعزم صاحب کتاب و رسالت و در میان انبوه امتش اینچنین قریب در میان انبوه قومش اینچنین بیگانه در انبوه خاندان و عشیرش اینچنین تنها و در میان گرمترین و متعصبترین مؤمنانش اینچنین مجهول پیامبری معجزش کتاب و امتش امی شطورداران دلال پیشه سازندگان گور برای دفن زنده دختران خیش که یعنی همیت یعنی غیرت ناگهان تاریخ بر خود لرزید ناگهان چه می‌بینم برخاست سر کشید، نزدیک آمد، با گام های کنجکا و مرتعشی نزدیک آمد، تند تر کرد، به میان صف مهاجران و انصار آمد، جلوتر آمد، در صف مقدم یاران یک قدم جلوتر به طرف جلو خم شد. چه می بینم؟ این کیست؟ این مسافر کیست؟ این عرب نیست؟ چهرش به روشنایی سپیده است، پیشانیش باز، سیمایش قبار راه گرفته، چشمانش رنگ برگشته، خسته، کوفته، تشنه، بیتاب، پیداست که از سفری دور می‌آید، پیداست که سالها آواره بوده است، پیداست که از کبیری سوخته می رسد، این سلمان است، و بعد سلمان ماند در نخستین دیدار ایمان آورد و دیگر تا پایان عمر آرام گرفت و سلمان و منع شد و صاحب سر پیام آور شد و محمد با او خود را در انبوه مهاجران و انصار آن کوه سنگینی را که بر سینش آوار شده بود سبکتر احساس می کرد. چه سلمان بخشی از آن را خود بر دوش جانش گرفت هرگاه دردها بر جانش می ریخت سلمان را فرا میخواند. در چشمهای آشنای او ناله می‌کرد در گفتگوی با او فریاد می‌زد و آسوده می‌شد اما اما علی جز چاه‌های پیرامون مدینه چاه‌های نخلستان صاحب سری نداشت اگر می‌داشت چرا سر در حلقوم چاه برد چرا از شهر و خانه و خانواده‌اش به نخلستان‌ها پناه برد چرا تنها بنالاد چرا دردهای بیرحم و سنگینش را ناچار باید در چاه ریزد اینها جز به خاطر آن است که علی تنهاست در میان شیعیانش نیز تنهاست علی از محمد تنها تر است محمد سلمان را یافت اما اما علی تا پایان حیاتش تنها ماند از میان خیلی شیعیانش جز چاه های پیرامون مدینه کسی نداشت